اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به یین بحث مالکیت فکری یا معنوی جلسه پنجم گفته شد که در رابطه با اثبات حقوق مالکیت فکری و معنوی فقها و حقوقدانان دو دسته شدند بعضی قائل به جواز و سبوت چنین حقی نیستند که میشوند مخالفان مالکیت فکری و معنوی بعضی ها موافقند و اثبات کرده اند که ما چنین مالکیتی داریم و حقوقی هم بر او مترتب میشود. اون کسانی که مخالف بودند عدلی اقامه کردند که بعض از اون ادله گذشت یکیش این بود که مخالفت با قاعده تسلط یا سلطه دارد. دیگر این که این مالکیت فکری از طرف شاره امضا نشده است. دلیل سوم این بود که گفتند مالکیت فکری دارای یک رسالت و قداستی است. چرا که علم دارای قداست است و رسالت و مالکیت قائل شدن برای امور فکری و معنوی با این قداست و رسالت منافات دارد عرض کردیم که این چنین نیست چرا هرچند روایاتی ذکر شد که از سوره بقره 159 و روایات مختلفی که علم امر محترم و مقدسی است و دارای شرافت ذاتی و الهی است جواب دادیم که این درست نیست چون ما دلیل نداریم هرچه که مقدس شد نمی شود بر او موزد گرفت از او کسب درآمد کرد خیلی از شغل هستند مقدسند محترماند در این حال میتوانند ابزار برای کسب درآمد واقع بشوند شما چه قاعده کلی نداریم که هرچی که مقدس شد نمیشود ابزار درآمد باشد و این درست نیست ثانیا اینکه کسی از راه امری درآمدی داشته باشه با قداست منافاتی ندارد آه. قداست داشتن شی یک شی است کسب درآمد شی دیگر و سالسان اون امور تعبدی هستند که چون قصد قربت در او لازمه اونها نمیتوانند مشروط به مال بشوند و به عنوان مبادله مالی عرضه بشوند و انجام بشوند اما امور توسلی که در اونا قصد قربت لازم نیست اگرچه که انسان قصد قربت هم بکند اشکالی ندارد و سباب هم داره اما در عین حال اگر کسی قصد قربت نکرد نه این عملش صحیح است، ولو ثوابی بر کارش مترتب نیست اگر چون امر امر مقدسی باشد مثلا خدماتی که به مردم انسان میکنه مشکلات مردم رو حل میکنه دل مؤمن رو شاد میکنه و جان مؤمن و ارز مؤمنی را نجات می دهد این هم از امور توسلی است لازم انسان این کارا رو با قصد غربت بکند حالا کسی پول میگیره این کارا رو انجام دهد چه اشکال داره هم به اون وظیفش عمل کرده که مؤمنی رو نجات داده در این حال پولی هم به دست آورده است لذا اینها با همدیگه منافاتی ندارند دو امر متقابل حساب میشوند دلیل دیگر رو که بعضیا با این دلیل یکی دانستند که میشود دلیل چهارم گرفت گفتن آقا کتمان علم حرام است اگر بنا باشد که ما شرط بکنیم چاپ و انتشار و اقتباس و اخذ و استنساخ امور فکری و علمی را این باعث کتمان علم می شود و کتمان علم حرام است آنچنان که از آیات متعددی از قرآن کریم این مطلب سراحتاً برمی آید که در جلسه قبل بیان شد گفته شد این هم نمیتواند دلیل باشد چرا به خاطر اینکه کتمان علم که از طرف شارع مقدس نهی شده عرض مطلق کتمان علم نیست منظور بحث معارف دینی است حقایق و شرایع و معارف الهی است که در سعادت بشر دخالت دارند که از اون راه انسان نمیتواند استیکال بکند استیکال مال واسطه علم اما علوم فکری و معنوی معنی عام میست هم شامل امور مقدس الهی و معارف دین میشود هم غیر اونها پس اول از این بحث ما عام و خاص است این لحیه از کتمان علم مربوط به مورد خاص است، بحث معارف دین که اون اقاید و اخلاق و، احکام فقه دین باشد این است و ثانی اینا دو تا با امور معنوی و فکری درآمد به دست آوردن اون کتمان کردن اون آخر چطور چه بسا کسی بیاد از این را درآمد علمی درآمد مالی داشته باشد در این حال نه علم را کتمان نمی کند نه تنها کتمان نمی کند خوشحالم می شود تشویقم می کند و بیشترم فعالیت می کند تا تولیدات علمی بالاتر را داشته باشه و با همین درآمد کسب می کند. بیشتر معارف در میان مردم منتشر بشود و پخش بشود لذا اینا دو تا موضوعن با همدیگه هیچ تنافیگی ندارند. از بنابراین کتمان علم به وجود نمیاد. این آقا متاع خودشون میفروشه دیگران هم برای انتشارش، ترویجش و تبلیغ دین باید اجازه بگیرن، مالی رو پرداخت بکنن و به وظیفشون عمل میکنن به این وسیله که مالی رو پرداخت میکنن تا بتونن به ترویج علم بپردازند. از اینطور نیست که اگر کسی آمد شرط گذاشت برای تبلیغ و استنساخ و چاپ و نشت کتابش دیگه نشود علوم را و معارف را و معالکیت های معنوی را ترویج کرد. محصولات فکری رو ترویج کرد و مانعه بشود. نخیر الان امر رایجیست راحتی هم داره ترویج می شود و صرف گرفتن مال مانع ترویجه علوم و معارف نشده و نمیشود علاوه بر اینکه حالا در کسانی که ادله برای موافقت آوردن خواهد آمد که نه شاره میگوید باید از راه حلال در درآمد کسب بکنید و کسی که میخواد انواع تصرفو بکنه در یه مالی از جمله مالی که مالکیت فکری دارد باید رضایت صاحب اثر رو به دست بی یعنی اگر نکرد حق دیگران رو زایع کرده حق اون کسی که مبتکر است و مخترع است و تولید علمی داشته است که حالا در بحث موافقین این مطرح خواهد شد لذا این نهی از کتمان علم نه این ربطی به اکتساب از راه مالکیت فکری و معنوی ندارد و متنافرونی چون دو موضوع است و دو حکم ولو در سرسله طولی هم دیگرم قرار گفته باشند اما بر موضوع واحد وارد نشدن که بگیم محل امرو نهی است امرو نهی در یه جا جمع شدن یه عملی هم معمورن به می شود هم منحیون اند می شود نه چنین چیزی نیست و که بر فرض هم چنین بشود خیلی از آقایی مگرد نه خیلی اجتماع امرو نه جایز است این که تازه میگن جایز نیست میگن ما جانب امر را بر نحی مقدم میداریم بعض این نظر رو دارن لذا طبق این دو تا مبنا ولو بگیم نهی از کتبان شامل این مورد بشود اما در این حال نه این فروختن امریز جایز و این شرط گذاشتن منافعاتی با ادله نهی از کتبان علم نخواهد داشت اما پنجمین دلیلی که مخالفین برای مالکیت فکری و معنوی قائل شده اند این است که میگویند حقوق مالکیت فکری اصلا قابل تملک نیست چرا؟ این قابل تملک شخصی نیست که بخواهند مقیدش کنند به اجازه صاحب اثر و به عنوان شرط برای استفاده از این کتاب منعی ایجاد کنند برای دیگران که همون مشتری باشند بعض از دانشمندان ما اینا قائلند که حقوق مالکیت فکری این ثروت های عمومی است مثل انفال که قابل تملک شخصی نیست اون زمین هایی که مسلمان ها با جنگ گرفته اند از کفار میشه انفال این تحت دولت است که این زمین ها رو به هر نهبه بخواد اجاره میدهد یا مسالهه به اسطلاح مساقات و مزار مزارعه و به انهای مختلف در اختیار مسلمان ها قرار میده و حق خودشو بر میدارد و هیچگاه مسلمان ها مالک اصل زمین نمیشوند. این مربوط به همه مسلمان‌هاست در طول تاریخ انفال این چنین‌اند خب حالا میگن اموال معنوی هم همینطوره به ملک شخص کسی در نمیاد جزء دارایی‌های ملی و عمومیست این در حقیقت در اختیار حکومت قرار می‌گیرد او اذا این مربوط به کل جامعه است که مسئولش حاکمه و در اختیار شخص خاصی قرار نمیگیرد از جمله این مواد همین اختراعات است بله که اختراعات هم گفتن این چنینه چرا دلیل آوردن از جمله مرهوم شهید مطهری که این نظر را قبول کردند میفرمایند انسان در تمام قوای خودش چه جسمی چه روحی مدیون جامعه است و این قوا و نیروها تنها مال خود او نیست. لذا اجتماع هم نسبت به این قوایی که هر کسی دارد، دارای حق است. از جمله مثلا ماشین، میگن یعنی مظهر ترقی اجتماع است. لذا ما محصولات ماشینی رو نمیتونیم محصول سرمایهدار بدانیم غیر مستقیم این ملک او بشود نه این محصول شعور و نبوغ و اون مخترعی است که این ماشین رو درست کرده این وسیله رو به دست به وجود آورده و لذا اون چیزی که مربوط است به آثار نبوغ و شعور او نمیتواند مالک شخصی داشته باشد لذا ماشین هایی که اختراع میشند نمیتونند به اشخاص تعلق داشته باشند و اگه کسی سوال بکنه آقا پس لازمه ی حرف شما این است که ما مالکیت فردی را نعقض بکنیم بگیم مالکیت خصوصی در اینجا ملغاست و اثر ندارد و مالکت در اینجا اشتراکی است آیا این که بگیم اینها حق ندارن مالک بشوند آیا نقض مالکیت فردی نمیشود شود؟ مختری که زحمت کشیده، فکر کرده، سالها رنج برده، تا چیزی اخترا کنه و به دست بیاورد؟ مورد برم از حق خودش و از مال خودش محرومش می آیا این نقض مالکیت فردی الغ... الغای مالکیت شخصی و خصوصی نیست؟ میفرمان نه. در این موارد مالکیت مالکیت اشتراکی و اجتماعی است. ما مالکیت فرد رو قبول داریم اما نه در همه جا و نسبت به همه چیز نه در این موارد که موارد محدودیم هم هست نه ما قائل به مالکیت اشتراکی و اجتماعی میشوییم. مالکیت اشتراکی در مورد خاص اشکالی نداره در نتیجه اگر ما اومدیم اینطور گفتیم خب اگر چیزی باعث شد که یک شخصی ابتکار و اختراعی داشته باشد و بر اثر تغییر و تحولات و شرایطی که جامعه در اختیاری یک مبتکر قرار داده چیزی را تولید بکند این موجب این میشود که این شی بشه ملک جامعه و مشترک بین همه افراد جامعه بشود لذا مانند الفال که جزء از های عمومی حساب میشه این اختراعات هم این چنین است خب علاوه بر این شاید بشود این رو هم اضافه کرد که این کسانی که قائلا جزء انبال عمومیه این چنین قائلا اون اموری که اگر بنا باشه به ملکیت شخصی افراد در بیاد جامعه از او متضرر بشوند مثلا از نظر اقتصادی یا فرهنگی، تربیتی، هنری، اون نباید میره که شخص کسی باشد. به عنوان مثال، الان در زمان خودمون داریم و این مورد بحث علمی است. آقایی است کارخانه بزرگی دارد، صنایع مادر که یک کشوری رو داره اداره می تولیداتش اونقدر بالاست و سهم او در ترقی جامعه اونقدر زیاده که اگر این کارخانه بخوابد معطل بماند کل جامعه ضرر میکند خوب حالا اگر این فردی که مالک چنین است و چنین کارخانهای بمیره چند وارث دارد اگر بنا این کارخانه را تقسیم بکنند بین ورثه لازمش این میشه این کارخانه بخوابد متوقف بشود از اون تولید اولیه که کارساز است و قوام جامعه بر او متوقف است که اگر نباشه یک رکنی از ارکان جامعه سوس میشه و خراب میشه و در کل جامعه اثر میگذاره خب آیا میشود این مال به ارث برسد خود کارخانه و خود اصل؟ این بحث است که بگیم نه چون بس بس فرد نیست نیز ضررش به جامعه میخورد آنچون که سودش هم مربوطه به جامعه است کل جامعه ترقی میکند و پیشرفت میکند ازا میشود اینجا جلوی تقسیم این مال رو و این کارخونه رو و این صنعت رو گرفت ارزش مالی او را به ورثه می دهند خود دولت میخرد یا یه شرکت سهامی شرکت تا آبانی که هر کوم سهم هایی داشته باشند مجبور اینو میخرن تا کارخانه به خودش ادامه بدهد این دیگه نمی نمیکنن و به اصطلاح تکه و پاره نمیکن که هر قسمتشو به یک ورسه بدن هر جور خاص در او ت بکنند. چرا می خسارتش به کل جامعه میرسه آنچنان که اگر درست کار میکنه، این فایدهش به همه جامعه میرسه و باعث ترقی جامعه است و طبق تعریف قرآن و بیانی که در سوره نسا داریم جعل الله لکم قیاما اموالتان را که میگه دسته بچه ها ندهید خدا مال را باعث قیام جامعه قرار داده است و مال های کلان این شنین که اگر میخوان تعطیل بشن یا صدمه بخورن صدمش به کل جامعه میکنه نه فقط به اون فرد خاص اینجا مانعه از حق سیمون مال می شود بله همه میگن یا به عنوان شرکت سهامی از سودش بدن استفاده کنن یا لاغل دولت اون رو می گیرد و تحت کن رو خودش داره و به اندازه ارزش این صنعت بزرگ به اونا حقشون رو پرداخت میکنه لذا بیم اختراعات هم چنینن امور معنی و فکرم این چنینن که اگر باشه محدودش کنیم مقیدش کنیم و مشروطش کنیم که به ازن مخترع باشد چه بسا مخترعین نمیخواهند که بدون گرفتن مالی و یک امتیاز مادیی این اختراع خودشون رو در اختیار دیگران قرار بدن لازمش شدیم که جامعه از نظر علمی و پیشرفتهای مختلف حالا صنعتی اقتصادی فرهنگی عقب بیفتد، متوقف بشود، پس رفت بکند و لازمش این میشود. لذا نباید ما در این موارد قائل به مالکیت این آثار بشویم. چون تباات و آثاری که از خودش باقی میگذارد و زررها و خسارتهایی که به وجود میاد منحصر فقط به اون صاحب مال نمیشه که چیزی گیرش نیامده. کل جامعه خسارت میکنه. کل مردم و جامعه اسلامی در تنگنا قرار خواهد گرفت و از کمال و پیشرفت و ترقی باز میماند. به تعبیر عرفی دودش تو چشم همه خواهد رفت نه فقط اون کسی که مالکین اثر فکری پس بنابراین ما نباید در امور فکری و معنوی قائل به مالکیت فکری بشیم و به دنبال او حقوقی رو برای این مالکین هر نظر بگیریم به خاطر این تالیف هایی که دارد به نظر می رسه این دلیل پنجم آقایون هم که از مخالفین مالکیت فکری هستند دلیل تامی نباشه و بر این نمی شود تکیه کرد چرا به خاطر اینکه اولا این که بگیم آثار شعور و نبوغ این نمیتواند مالکی شخصی داشته باشد یه است که باید دلیل برش اقامه بشود به چه دلیل؟ اگر میگید این محصول زحمات، تلاشها و سلسله گسترده پیوند یافته افراد جامعه است تا این آقا تونسته اختراع بکنه مثلا درس خونده از امکانات کشور استفاده کرده مشاورین و اساتید و راهنماها و و اینها دخیل بودند در اینکه این آقا بتواند به این اختراع برسد اگر اینطور باشه و باید با همه معاملات چنین کاریو انجام بدیم بالاخره همه افراد جامعه در همدیگه مؤثرند. همه فعالیت‌های اجتماعی هر کدوم تأثیر می‌ذارن در اینکه دیگری چیزی نصیبش بشه به جایی برسد پس این فقط منحصر به مالکیت فکری و معنوی نخواهد بود در انوال مادی هم همینطوره هر کسی به جایی رسیده این رسیدن اون نتیجه تلاش‌های کل جامعه حکومت آهاد مردم والدین اساتید مشاورین رفقا و همکارانش تا این تونست آقا به یه جایی برسد پس بیان چون مدیون همه است و همه در به وجود آمدن این فعالیت او آثار او و این تولیداتی او داشته موثرند، پس این هم حق ندارد اموالش را بفروشد این یه مثال نقضی ثانی دلیل ندارد که اگر چیز از آثار نبوغ و شعور کسی بود این نمیتواند مالک شخصی داشته باشد به چه دلیل اگر چیزی مال شد و مالک پیدا کرد از هر راهی که به دست آمده از در راه های مشروع به دست آمد احکام ملک بر او پیاده میشه و حقوقی هم که مترتبه بر او یقیناً بر او جاری خواهد شد خب جواب سوم این است که درسته که جامعه همیشه در شکوفا شدن خلاقیت های فکری نقش به سزایی داره و هر کسی با استفاده از امکاناتی جامعه است که تونسته به مرحله اختراع و ابتکار و اینها برسه اما اینا مانع نیست برای مالکیت فکری به چه دلیل کسی مال که افکار فکری خودش و آثار علمی و معنوی خودش نتواند بشود چون از دیگران استفاده کرده است و لازم هیچ فرزندی بدون اجازه پدر مادر نتونه هیچ معامله بکند چرا به خاطر اینکه دیگران هم دخالت دارند در این اثری که به او به وجود آورده است یعنی اگر ما یه مقدارم ملکت برای اونها قائل بشویم یه مقدار حقا بر اونا قائل بشویم و خب فرزن هر از پدر مادر داره دیگه و از جامعه داره و از اساطی توش و توی را بزرگترها داره امدتا پدر مادر اگه ما میتونیم بگیم در موارد که کسی به جایی رسیده از چیزی تحصیل کرده حتما باید از پدر مادر اجازه بگیره و پدر مادر بگیرن راضی نیستیم اگر بخوایی اختراع، ابتکار، پول، کارخونه مال چیزی رو به دست آوردی و وجود آوردی بفروشی بعد با اجازه ما باشه یه چیزی به ما بدی بعد بفروشی و الا معامله صحیح نیست و الا ما قبول نداریم چرا چون ما دخیل بوده ایم ما بودیم که تو رو به این روز رسوندیم ما بودیم که تو رو به اینجا رسوندیم و تو توانستی چنین کارهایی انجام بدهی نه اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه اینا علت معدن اون چیزی که برای ترتیب آثار ملکیت برمال لازم است اراده خود شخص است و ملکیت او حالا منشه ملکیت هرچه می خواهد باشد منشه اراده او هرچه می خواهد باشد باشد این آقا مالی دارد دو اراده دارد که منتقل کند به دیگران و حالا گاهی موقعا مجانی به دیگران میدهد گاهی موقعا با پول میدهد. مطلقا گاهی موقعا مشروط می کند به شرطی چه اشکال داره پس بنابر این اینکه دیگران هم حق دارند و زمینه رسیدن او به این مقام رو به وجود آوردن این دلیل به تنهایی نمیتونه مانع بشود حد اکثر چیزی که میتوانیم بگوییم این است که بله این آقا اگر بخواد اثر فکری هنری یا علمی خودش رو بهایی در مقابلش بگیره و از این راه درآمد کسب کنه اجحافه به دیگران نباید بکنن بیش از اون مقداری که جامعه خودش قیمت گذاری میکنه و ارزش گذاری میکنه مال خودش رو نفروشد و به تعبیری در رابطه با قیمت گذاری این مال فکری جامعه اسلامی، حکومت دینی و اون نهادی که مسئول قیمت گذاریاش او باید نظر بدهد که این دستش باز نباشه به هر قیمتی که بخواهد بفروشد. بله چون جامعه دخالت داشته در اینکه شما دانشگاه رفتید درس خوندید فکر کردید امکانات دولتی استفاده کرد از مردم استفاده کردید پس اون نهادی که قیمت گذاری میکنه. اون کمیته علمی که میتونه به که ارزش علمی کار شما بر اساس روابط اقتصادی امروز جامعه، بناس قیمت گذاری بشه چقدر باید قیمت گذاشته بشه بر او اساس شما تا اون حد فقط حق دارید قیمت بگذارید و مال رو کسب کنید و از اون راه از دیگران چیز رو به دست ببرید بیش از اونه پس بنابراین این دلیل هم به نظر میرسد تام نباشد و مجموعه این عدلهی که بیان شد غیر از قاده تسلط که حالا چون در نظر موافقین هم آمده این دلی نه این شهار تا دلیل آخر هیچ کدوم وارد نیست و دلیلی بر منع مالکیت فکری نمی شود و نمی تواند بطلان حقوقی را که مترتب بر مالکیت فکری اثبات بکند تا اینجا ادله پنجگانه ای که آین مخالفین مالکیت فکری آوردن تمام شد که عبارت بود در ناسازگاری با قایده تسلیب، عدم امضای شاره نحی از کتمان علم وجوب ارشاد جاهل احتساب مال معنوی و همین قداست داشتن امور مالکی و معنوی اینها پنج دلیلی هستند که برای اثبات عدم مالکیت معنوی اقامه شده بود که به با این قواعد و این عدل پنجگانه کسی نمیتونه نسبت به مخترعات و متملکات فکسی و معنوی خودش حقوق رو قرار بده و با اینها معامله بکند حالا تا انشالله نظر موافقین مطرح بشود و مورد نقل و نقد قرار بگیره و در نهایت مبانی اولی ابتدایی و کیفیت استفاده از عدله و تطبیق عدله بر بحث مالکت فکری انشالله مورد بررسی قرار بگیرد و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین.